رخداد نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسانشناسی بنابرای خدا با عرض سلام آمده بهترام خدمت شمندگان گرامی در خدمت شما هستیم در قسمت سیوم برنامه برابری از صدای امید از رادیو اینترنتی امید.com ما از این که گرامی رو خیلی نگه داشتیم تو این بحث های قدیمی بسیار عز خواهی می کنیم ولی خب مجبوریم برای اینکه شروع بحثمون بین اینها ارجا خواهیم داد و برای مقدم این لازم هستش من در پایان قسمت گذشته رسیدم به تمدن جهانی دولاند که توسط انسان های کرومانیون هستش که از کردم هم نانده تالا هم کرومان... کرومانیون ها از حوض 140 هزار سال پیش که اجداد ما هم و مصابیان ها انسان های جدید بودن همزمان با ما بودن ولی خب در یک فراین و بازه زمانی حدود 100 هزار ساله نابود میشن رسیدیم به دوری دولاند و موقعی هستش که نژاد ناندرتال هایدلبرگ در حال انقراض هستن نژاد کرومانیون هنوزم هست سه نژاد دیگه یعنی کرومانیون، شانسلات و گریمالدی هنوزم هستن در دوره میزولیتیک میانسنگی یعنی اولی پایین پالی سنگی دوره میانسنگی هستش میزولیتیک که نژاد شانسلات و نجاد گریمالدی در اروپا در شرق اروپا از بین میره حالا دلایل از میرفتنشم بسیار زیاد هستش که وقت نیست چون ما میخوایم قسمت سیوم تمام بکنیم و از قسمت سی و او یکم وارد شرق آفریقا و دلایل مهاجرت بشیم خیلی میخوایم فاکتور بگیریم که دیگه بحثا خیلی زیاد طول نکشه و در صورتی که نژاد کرومانیوم هنوز هم در واقع حیات خودش ادامه و دو نژاد دیگه هم قبل از اون به وجود اومده و همراه با نژاد کرومانیون شروع به حیات توی اروپا میکنن که نژاد مدیترانه که از جنوب اومده و دارای قد قامت کوتاه و چشمان فرو رفته و موهای سیاه و صورت کشیده یا دلیکوستوفال بوده و نژاد دیگه نژاد آلپی هستش که اما اونها از شرق بوده و قامتی متوسط و چشمان و موهای خرمایی خرمایی رنگ و صورت جمجمایی گرد یا که به اینا میگن پراکسیفال داشتن به این تدبیری که باید گفت که اصل این قوم از آفریقا و آسیا بوده و نژادهای سابق به وسیله اونها از بین رفته یا مجبور به عقب نشینی شدن نژادهای انسانی یه انسان دوره میزولیتیک در این دوره هم به حیات خودش ادامه میده ولی نژاد کرومانیون در حال زواله و دو نژاد دیگر نیز رو به ازدیادند. یکی از این دو نژاد، یکی نژاد ارسکادن مدیترانی و آلپی هستش که اکثریت سکنه اروپا مرکزی رو تشکیل میکنه، تشکیل میده و در آمیخته با با همدیگه و یک نژاد دیگه ای همی که از قبل بوده و به در واقع تو این فعل و این فعالات شروع میکنه به از بین رفتن نژاد اروپا شمال اروپا بوده نژاد معروف به شمال قسمت اسکاندیناوی گرینلند و حتی احتمالا همون اجداد اونایی که مدعی هستن که چیز اسکیما هجوز کرومانی هست. ها هست اینها احتمالاً اجداد اونها هستن و از اجداد اونها باقی در تو این پژوهشی که بنده ترجمه کردم توی از مجله ساینس که این نجات مشخصات محل زندگی میشه گفت که دارای قامت بلند بودن جمجمه کشیده بودن هم مثل دولیک و سفالها چشمان آبو و موی بور هستند و مرکز زندگی اونها شرق و مشتق اروپا بوده. ما از بقیه بقیهصرفه نظر میکنم سلاغ آخرین دورش یه دوره, دوره گوردون چایلد هستش که کمانی از بین میرن. دوره نئولیتیک یا نوسنگی نوسنگی کرومانیون ها رو ما میگیم. آن واسه خود ما انسان ها رو هنوز نرسیدیم اون رو خواهیم گفت. دورین اولتیک یا نوسنگی نه یه تمدن واحد بلکه تمدن های بیشماری رو به وجود میاره که وچمدی از اونها کشت گیاه یا پرورش حیوانات مختلفه. می‌بینی که پس انسان های کرومانیون ادامه داشتن تا زمانه حتی به وجود بدن انقلاب کشاورزی همینا اهلی کردن حیوانات و حتی کاشت برخی از گیاهان. ولی این کاشت برخیز نشونه این نیست که اینها هنوز با اون انقلاب کشاورزی که تو اون هلال تو ایران و قسمتی از شمال ترکیه و این ترکی قسمت بین النهرین به معنا نیست جناب آقای هنر اینو اشتباهی نگیرن یه سری همسانی هایی هستش که با طبیعت اینها به وجود میارن یه سری همنوایی هایی هست که با طبیعت اینها شک میگن این کشاورزی به معنای اون چیزی که بعد از انقلاب کشاورزی شک میگه اون نیستش اینو اینجا عرض بکنم بعد انتخاب محله های گوناگون برای ایجاد یک سری گونه های جدید جمعیتی و به وجود اومدن یک سری کلونی های جمعیتی اینها به وجود میارند یه سری روش های متفاوت در, در قار ها مثلا تو کارها داخل قها یه سری چیزهایی می سازن برای زندگی از بقای که ازشون باقی مونده. شکل و زینتی که اینها در کارهاشون مثلا در ساخت ذین هاشون در ساخت وسایل شکارشون بعض وقتی که خوهنرمدی های, های هم از خودشون نشون میدن. حتی ظرف، سنگی هم از اینها به جا مونده که حتی توش یک چیزای هنری هم مثلا گلمانندی هم توش ساختن برای مثلا خوردن مثلا آب و مثلا غذا و اینها یعنی مشخصه که اینها به یک درجه ای از رشد مغزی رسیده بودن و حتی یه سری باقی مونده یه سری چیزای مذهبی هم ازشون هست یعنی مثلا یه سری نقاشی ازشون باقی مونده که احتمالاً به یک سری مثلا عرض کردم در دوره گذشته خب تا حدودی به سهرودادها هم معتقد بودند به تلسمه ها و چیزا هم مشخصه توی چیزایی که ازشون باقی مونده هستش. بعد اختراعات جد... کوچکی هم که من جنبه محلی داره و مربوط به خصوصیات معرفت و اونها داره، اقلیمیه و متعلق به اقلیم اونها هستش که ما توی بقایایی که از اونها در ملاقاتی که سوئد و دانمارک هستش اینها رو میبینیم. ولی هوموساپیان ها که اینجا بخواییم با آخر بحث برشتیم در یک زمان در اروپا، آفریقای شماله و شرقی و در فلسطین و حتی در حین تلاقی اونها با سایر انسان ها، با کرومالیون ها روبرو میشن تنها در اروپا بقایای انسان هایی که تا حدی نزدیک به نژاد سیاه معروف به نژاد گریمالدی بوده و همچنین انسان های بلان کرومانیون و انسان های کوتاه قد کمب کاپل که پاری از اونها سریع مدور و حالت پراکیستفال داشتن دست پیدا می کنن. این شواهد نشون میده که یه چیزی حدود بین شست هزار سال تا سی هزار سال پیش انسان های وارد وارد اروپا میشن و حالا یه مسئله که هنوز هم در واقع ذهن پژوهشگران رو به خودش مشغول کرده این نژاد کرومانیون چجوری از بین میره؟ باز هم نظریاتی شبیه همون نظریه که در مورد از بین رفتن ناندرتال ها هستش یه سوری در بخش ناندرتال ها که اینها احتمالا یا از طریق زیاد خواهی یا حالا هرچی چی میل به تسلطی که توسط انسانهای هموساپی هم داشتن از بین رفتن نتونستن خودشون رو سازگار بکنن یا که نه اصلا از بین نرفتن قاطی شدن یعنی در واقع به همدیگه مبزود شدن و همونطور که خود شما تو برنامه های گذاشتن و بودید حدود 6 درصد از جنه های ناندرتال ها تو نقشه جنتیکی انسان های ابلوزی وجود داره در مورد کلومالیون ها چون که نقشه جنتیکی اونها هم موجود هست یه همچین چیزی در مورد اینها و شبیه ناندرتال ها واقعا نمیشه گفت احتمال این احتمال وجود داره که یا اینها به خاطر از آخرین عصر یخمندان چون بدنی ها داشتن که خیلی با سرما سازگاری نداشت به خاطر به وجود اومدن های طبیعی تو شمال اروپا و حتی تا مرکز اروپا هم این سرما اومده بود اینها به خاطر این سرما هستشون منقطع شد و حالا اینکه چرا اینها اصلا مهاجرت نکردن به جاهای دیگه خب این ابهام در مورد اونها و یا اینکه نه اینها هم احتمالا کسایی یاشن باقی موندن توسط ائوموساپین ها یا انسان های امروزی از بین رفتن لذا ما در مورد کارامانیان ها خیلی تحقیقات و پژوهش های تاریخی زیادی نداریم اگر هم هستش مسائل علمی خیلی سوالات علمی و سوالات که در واقع هنوز جواب بهش نشده در موردشون زیاده ما هنوز به اینها جواب اینها رو از اندیشمندن تا حالا نگیرفتیم بعد اینجا بحث کرومانیون ها رو تقریبا به نظر من کافی هستش ما اشالله در قسمت سی این برنامه برخواهیم کش به همون 140 سال پیش به انسان هوموساپیانی که شکل میگیره اجداد اولیه ما این که در همون آفریقا در شرق آفریقا چیکار میکردن؟ چطوری زندگی میکردن تغذیهشون از کجا بوده به چه دلیلی مهاجرت کردن؟ اول به کجا مهاجرت کردند دلیل مهاجرتشون چی بوده و دلیل اینکه این راه رو انتخاب کردن رو ما مورد بررسی قرار خواهیم داد و اینکه اومدن تا توی خاورمیانه و مشخصا توی فلات ایران و چطوری پخش شدن و از کجا پخش شدن و به کدام مناطق جغرافیایی رفتن و اجداد اون هایی که الان بسات اروپا و آمریکا زندگی میکنند به چه دلیل ما مامکی که 90 در تو این فلسطین ایران بوده به این سوال پاسو خواهیم داد و احتمالا شروع از شروع قسمت سیویکم احتمالا تا قسمت چهل و دوم به این خواهیم پرداخت و از قسمت چهل و دوم وارد تاریخ که لذا ما هستیم که تاریخ از اونجا شروع میشه خواهیم شد و اینکه انسان های امروزی که توی خواب میاد زندگی میکنن از کجا ناشی میشن و از دارای چه اجدادی هستند قسمت سیوم برنامه‌ام اینجا به پایان می رسونیم و به امید خدا تا آغاز قسمت 31 شما شنوندگان گرامی رو به خداوند متعال سپارد خدای یاردارت